این شروع بشرا جمیعا و این ثروع السلام <البشر جميعا> علیکم و <انثورو أغل الورود> <سلام> ورحمة الله و برکاته گرامی های گرامی ببخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب میداریم به داشته های امشب اهتفو احلا نشید اهتفو احلا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 میکنیم ولی عمل ثابت ساخت کینا تنا محض ادعا داشتن این برنامه را یک شمب شب ها و سی شمب شب ها از رادیو سوی خلافت فراموش نکنید لحظات خبری سوی خلافت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 السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت با برنامه امشب ما خوش آمدید نخست از همه شما را از آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی با خبر می سازیم این هم سرخط چند خبر بیانیه جدید شیخ عدنانی حفیظه الله زیر نامی و یحیی منحیی عن بینا بناش الرصید وقوع حمله استشهادی در شمال بغداد کشته شدن سی عسکری رافضی در فلوجه صلیل الصوارم. صلیل الصوارم. و حمله تهاجمی دولت اسلامی بر پاسگاه‌های پیشمرگه صلیل الصوارم. صلیل الصوارم. نشید العبا. و و این هم تفصیل خبرها بیانیه جدیدی شیخ ابو محمد العدنانی الله سخنگوی رسمی دولت اسلامی تحت نامی و یحی منحی عن بیینتین بناشر رسید در این بیانه اتدا شیخ عدنانی ها را خطاب قرار داده آنها را تهدید می نماید در ادامه به ناتوانی آمریکا در جنگ علیه خلافت اسلامی اشاره می کند خیانتها و کفریات علمای سو و همدردی آنها برای حلاکت کافران نیست در این بیانیت جا دارد و سپس شیخ به نصیحت نمودن مجاهدین دولت اسلامی می پردازد و همچنان به ماه رمضان پیشرو اشاره می کند و به مناسبت به مجاهدین خلافت در اروپا و آمریکا دستور می دهد که به کشتن کفار سلیبی در آن کشورها دست بزنند. تصاویری از کشورهای مالیزی، کشمیر، جزیرت العرب، ایران، کردستان عراق، آمریکا، غزه، تونیس، ارجنتین، کانادا، ترکیه و سعودی به نشر رسیدند که نشان می‌دهد انصار خلافت اسلامی در حال نشر و پخش این بیانیه روی صفحات اینترنتی‌اند. در همین حال اعلامی ولایت رقه تصاویر را به نشر رساند که در آن مردم با شوق و ذوق عالی به این بیانیه جدید دولت اسلامی گوش فرامی دهندند. بازودی ترجمه دری این بیانیه از طریق رادیو صدای خلافت بناشر خواهد رسید انشاءالله الله در همین حال اعلامی ولایت عدنی ابیان ویدیوی تازه‌ای را زیر اینامی سحق العدا به رساند در این ویدیو های یمن زیر دستان شیران خلافت اند و با طریقه جدیدی با سازای اعمالشان می‌رسند یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی با استفاده از کمربند انفجاری نظامیانی بسیج مردمی را در منطقه دجیل واقع در شمال بغداد آماج قرار داد که در نتیجه ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت این در حالی است که در این نواحی حملات دولت اسلامی بالای بسیج مردمی در عراق افزایش یافته است هفته گذشته چندین حمله استشادی تجمعی همین نیروها را در بغداد آماج گرفته بود که در نتیجه صدها تن نظامیان کشته و زخمی شده بودند در درگیری ها در منطقه آمیریه فلوجه سی اسکر عراقی کشته و یک ارادموتر بلدوزرشان از بین رفته است. آمیریه فلوجه مدتی است که شاهد درگیری‌های شدید بین مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای رافیزی بوده است. رافیزی‌ها ها در مدت چند روز گذشته ستها کشته در این منطقه دادند. تازه ترین گزارش ها از ایراخ حاکست که مجاهدین دولت اسلامی پاسگاه های مرتدین پیشمرگر را در روستای شندوخه واقع در ولایت جزیره با موشک های و گلوله های سقیل آماج حملات خود قرار دادند که منجر به تلفات جانی و مالی در صفوف دشمن شد. نیروهای های ظالم و تاغوتی فجر لیبی در تازه موارد واقع در غرب شهر سورت را توسط جنگنده های هوایی بمباران نم که در نتیجه این بمباردمان وحشیانه دو کودک ملکی شهید شدند این بود تحولات و پیشروی های دولت اسلامی صلیل الصوارم. صلیل الصوارم. ملتنا به گلهای... آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بر ببرید برنامه فکری تعلیمی و تربیوی. بچیکادخترا که سطری می کنه خلاف اسلام است میتونی بر م بگوی که کدام کدام یاد داری دعای خوردن دعای ازخووخویستن دعای خو کردن اینها اطفال شعران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پام برزو ای است که به خلافت اسلامی و از گناهان تو کنند بله بله اینها گل های خراسانند که در کوههای خشک خوشک جنگل های بی پایان و آوازهای های حیبتناک صلاح های به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند با یک دستشان قلم و به دست دیگرشان شمشیر است دا بمبوری یا جنگ یا صدای تفنگ و صدای بمی چیزا را مشنوی، نه، الحمدلله همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند الله، دلگفته های اطفال خراسان دو شمب شبها از رادیو صدای خلافت منحج تا منج های معمن و بادییانت رادیو صدای خلافت شما را باز هم در برنامه منهج دامن حج،, تا من حج.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 یک چیز خطرناک مسئله ربا و سود بود اسلام چه نظر در پیوند به پدیده سود دارد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدری ویسر لی امری واحلولعقدة من لساني یفقه قولی اما بعد وقال تعالى یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله در مباحث گذشته پیرامون جهانبینی مادی مشخصا صحبتهای خود داشتیم و چون بحث ما واضح تر شوه روی دو مسلکی که شیوه های کفری و غیر اسلامی و غیر آسمانی بود و مشکلات خود داشت را هم به معرفی گرفتیم بخصوص در مبحث پیشین بحث پیرامون مسلک سرمایهداری یا فیودالزم یا نظام کپیتالزم یا نظام راسمالیزم هم داشتیم و ای گفتیم که نظام کپیتالزم هم یک نظام است که از شالوده ذهن و ساره ذهن بشر ناقص است <تصفيق> یعنی در مقابله به نظام های الهی و ادیان الهی است که در بخش اخلاق به نظام و نظامداری هم توجه شده <تصفيق> و یکی از مسائلی که بسیار خطرناک بود و یکی از عوامل شکست در امی جوامع شرقی هم می باشد مسئله سود و مسئله ربا است.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 اینمین مسئله شنی و زشت و پلید در دیگه مسائل جنگ اعلان نکرده الله و رسولش یعنی در حقیقت کسی که سود میخوره به این مانا که در جنگ با الله و رسول استاده است و حتی در منابع دینی کسانی که در رهینمی گناه کبیره ملوث میباشن در طرفین کسی که سود میته کسی که سود میگیره و حتی کسی که در بین به شاهد واقع میشه الله سبحانه وتعالی اینها را چی گفته؟ ملعون گفته و در حدیث جابر ردیالانهو آمده است که رسول الله صلی اللہ علیہ میفرماید نسبت به همین مسئله که الله عزوجل سودخوار و دهنده و گواهان سوتخوری را نفرین کنه و در حقیقت یک نوی بدوا کرده نسبت به افراد که در همین مسئله پلید و زشت و قبی ملوث میشه و جرم همگی آنها یکسان است. و در دیگه حدیث رسول الله صلی اللہ میفرماید حتی در یک حدیث دیگر سخت قباعت این گناه کبیره را بیان داشته است و آن این است که عبدالله بن مسعود نقل میکند از رسول الله صلی اللہ وسلم که ربا افتادسه شبعه دارد یعنی افتادسه بخش دارد که سبکترین آن مانند این است که انسان با مادرش زنا کنند الله. در حدیث دیگری هم نقل است که عبدالله بن هنزله میگوید که یک درهم ربار اگر یک درهم سود اگر یک انسان دانسته بخورد یعنی سنگیرتر است بار گناش از سیوشش زنا حتی ربا یک مسئله اتفاقی و یک مسئله است که سر از او اجماع در یکی از آیات الله سبحانه و تعالی میفرماید که و اهل الله البيع و حرم الربا یعنی حرمت ربا مطلق در قرآن کریم ذکر شده و یکی از خطرناکترین مسائل است که اسلام سخت بالای از او رد کرده و این به یکی از عوامل شکست در جوامع بشری و در نظام و نظامداری و در زندگی رسالتمند نفی کرده جزاك الله علينا اسود جستجوی حق حق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 اینها ها کسانه هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند. خواسته الله بود که ما پشت کردیم، گشتیم، با استازه هاش با جاهای مختلف هاش و دیدیم، شنیدیم و از همه شنیدیم و بالاخره تانستیم به با توفیق الله تعالی ما به قد رسیدیم. این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید. جمع شب ها از راژیو صدای خلافت،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 بر خلاف شوی سرمایه‌داری به دو بخش تقسیم میشه و ما در خلال بحثها گفتیم که نظام کپیتالیسم کلاً دین و دینداری را از جامعه بیرون نمی‌کند در حالی که یکی از اهداف شیشکن ساختن تفکر روحانی است یعنی کلاً بیرون کردنش نیست بلکه در یک صاحه او را محدود می‌سازد به عنوان چند قضیه اخلاقی و از نظام نظام داری بیرونش میکنه که در نظام نظام داری و مطلق فرد حاکم باشه یعنی فرد حلال و حرام بکنه ولی برخلاف در نظام کمیونزم دو بخش وجود داره یک بخش مربوط بخش یک بخش مربوط اقتصاد است که بخش اقتصادی مکتب کمیونزم یا مسلک کمیونزم یا شیوه کمیونزم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 بدبخت به نام کارل مارکس و یک دوستش به نام انگلس در بین سالهای اجده اجدهه تا اجده اشتاد بنیادگذاری شد در کشور بنامه نام جرمنی چون نظر اینها کلا در ناحیه فکری و عقیدوی بر نفع دین و دینداری بودند اینا اساس همه چیز ماده می بندارن. و جهان مادی معرفی میکنند و نظر به تعریف که در جهان بینی مادی ما گفتیم و مزداق عملیش همین نظام و شیوه نظامداریست که اینها میگن که جهان هیچ هدف ندارند و جهان به سوب نامعلوم بدون هدف در حرکت است و هیچ مصلحتی در کار نیست و هر چیز غیر از ماده ماده چیزی را که ما لمس میکنیم و یک فضا را اشغال کرده و وزن داشته باشه یعنی <تصفيق> میگه هر چیزی که غیر از ماده فرض شود یعنی گپه که متعلق به غیب استک میگه او چیست موهوم است یعنی محض وهمیات استک و معدوم است هیچ وجود نداره و زندگی رو هم که اینها میگن همین مسلک زندگی رو میگن که زندگی بین تولد و است وقتی <تصفيق> که انسان میموره بدنش به ذرات تبدیل میشه و نهایت هم در ارواه پراگنده میشه و نظر بینمی فرمول رکینا گذاشتن منکر آخرت هم میشه و این نظام در نوزده ابده توسط لینن که او یک انقلاب بسیار بزرگ و قدرتمند در روسیا برا انداخت حتی در وصف لینن هم بعض آثار وجود دارد که ای شخص یک شخص یهودی بودک و این شخص یک شخص خونخوار و یک شخص ظالم و یک شخص مستبد بود و توانست که در 19 ابدا بعد از امین انقلاب قدرتمند امین مفکوره و تصور در کمیونزم در جامعه روسیه مورد اجرا قرار بده.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 یک نظام زشت و پلید و ضد فطرت انسان بود برمیخاست سرشه از هم می حالا حال آمدیم در نایه در ناهیه فکر این مسلک چیز بگویم فکر این مسلک این است که جهان مادی است و همه چیز از ماده است و غیر از آن که قبلا گفتیم هر غیر از ماده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 تراحی از این نظریه است که کارل مارکس یهودی است و تطبیقگر از این نظریه است که لینن روسی است و کسی که بخاطر بقای از صدها و هزارها انسان ب به قتل رسانده و استالین است و میگه از سی چیز کافر است سه چیز کافر استیم و ایمان نداره. یکی الله دوم دین و سوم مالکیت فردی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 خانه لباس و زمین برای هر کس و ما در مثالهای زنده ایره به چشم سر در افغانستان مشاهده کردیم که دکتر نجیب مرتد کافر هم به عنوان یک کس که رئیس جمهور بود در مکران زندگی میکرد و یک کس که مامور بود و معلم بود و یک چپراسی یک مکتب بود ولی عذویت اسبه خلق و پرچمه داشت او هم در مکرویان زندگی می‌کرد ولی فرقش چی بود چون به اساس کسرت فامیل مثلا اگر یک نفر فامیل زیاد می‌بود بر او یک اتاق اضافه برش می‌داد و گمان اغلب در پنج اتاق مکرویان زندگی می‌موند و من یک مامور هم که مامور عادی بود و در در در, در بخش مصرف هم میدیدی می‌دیدی که برای اینا کوپون داده شده بود و اینمی مواد اولیه را اینا میرفتن از مغازه‌ها فرقش با یک ماموری بود که مامور خودش می رفت امی نیازمندی های خود از مغازه می گرفت و کسی که رئیس و وزیر و رجال برجسته سیاده بود توسط خدمتگذار خود ای را چی می کرد. و امین است که تاریخ را هم اینا در مقابل طبقات تفسیر می کنند چه قسم یعنی میگه کل تاریخ بین تو قشر در کشمکش این دو قشر یعنی دو مجموعه از مردم که یک مجموعهش خان و سروتمند و مردم های قدرتمند بودن که آمده همیش مردم مظلوم و بیچاره و توهده و اه اه یعنی مظلوم و محروم کردن از وجود از یا بهره مندی و بهره کشی کردن که ای باز علی این مظلوم خسته علیه اینها استادگی کرده در اینمی کشمکش تاریخ چی شده روی هم رفته بیادن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 و اگر نظام سودی اوجا جا حاکم می باشد هر ده نفر قدرتمند اقتصادی نمیشد، بلکه اینمی پول منحصر میشه و محدود می به جیب یک فرد یعنی فرد به کمال اقتصادی می رسند. در حال که در این نظام سرسخت سخت مخالفت جدی با او ار ارکان و با او اصول و پرنسیب و مکانیزم که در نظام سرمایهداری است مخالفت های شدید صورت گرفته و ما در گذشته هم دیدیم که در کشمکش دو نظام در کشمکش دو نظام چون روسیه بینانه یک قدرت اقتصادی و قدرت استاقباراتی و نظامی به خاطر تطبیق از این نظام پای خدفرها، یعنی جغرافی روسیه در افغانستان گذاشت چون مرکزیت بود و میخواست که پیش بره بخاطر تطبیق و تلصیح از این نظریه و ما دیدیم که جانب دیگه امریکا چند هزار مایل دورتر نظری کاپیتالزم و سرمایه داری رو در ذهن خود میپروردن و دیدیم که این نظریه ای تقابل این دو نظریه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 حجت پرسیش های داخت قایم کردن حجت قبل از قتال قبل از وجود آمدن امارات تنظیم های تکریبا افغانه در افغانستان در مقابل روسا مصرف جنگ بودند اینا دشمن های بودند دشمن های خاص بودند اینا میخواستند که نام و نشان توحید و موحدین را از سرزمین افغانستان نابود بسازند مباحثه سیاسی و تحلیلی در مفاهیم شرعی در مجموع میدیا رسانه های جمعی و مطبوعات زیر اثر غربی ها است دشمن که علیه ما می جنگن به دو قسمت است یکی دشمن است که انگیزه دارد و یکی دشمن است که انگیزه ندارد پینشم به از رادیو صدای خلافت 90FM